بسم الله الرحمن الرحيم باب ما یوجب الوضوء باب ان شكه وضوء واجب میکند والذی يوجب الوضوء احد خمس خصال وان شكه واجب میکند وضوء را یکی از پنج چیز زیر هستند اولها منجوزین که وضوء واجب میکنند اون کار هایی نه که وضوء را بلکه اون کار هایی که وجوب باطل میکند اون کار هایی که پس باب باطل کننده های وزو هستی باب چه هستی اولو ما خرج من السبيلين و هما القبل والتبر من معتاد و نادره. اولین چیزی که وزو،, وزو رو ایجاب میکنه یا به عبارتی وزو رو باطل میکنه انچه که اصد الراح خارج میشه راه جولو و راه عقب. اون چیزی که خارج میشه من معتاد حالا چیزی عادتی باشه مثل شاش و نادرین یا یه چیز نادری باشه مثلا سنگریزهی خارج بشه مثلا می خارج بشه میگه هر چیزی که از دورا خارج میشه وزور رو باطل میکنه حالا چه یه چیز معتادی باشه همیشگی باشه معمولی باشه یا چیز نادری باشه و الثانی في صلاه و ینا مجاالا متربعا فلا یا زمه الوضو دومین باتل کننده خواب هست چه در نماز چه در غیر نماز؟ مگر اینکه مترب نشسته باشه یعنی با حیائتی متمکن محکم روی زمین چسبیده باشه مقعدش خب در این حالت دیگه چیزی خارج؟ نمیشه میگه فلا یا زمه در این حالت، اگر اینجوری نشسته بود بر زمین محکم دیگه وضوع برش لازم نیست پس دومین دو باطل کننده نام هست چه در نماتی در غیر نماز مگر این که مگر این که در حالت نشسته خواب بره که چارزانو نشسته یعنی مقعدش دوبارش محکم بر زمین یا برای چیز سفتی چسبیده که در این حالت لازم نیست وزو برش و الثالث الاغلبتو الاغل بمرزن او سکرن سفومین خسلت باطل کننده غلبه بر اقل هست ولی چه سببش مرض باشه چه سکران باشه اقلشو که از دست داد وزو چی بیشه باطل بیشه و الرابعو والرابع ملامستو النسائی چهارمین دلیل یا چهارمین علت باطل کننده لمس کردن زنانه در مذهب امام شافعی رحمه الله زنی دست لمس کرد شخص زنی رو لامس کرد و وضوشتی میشه. گجلوتر توضیش میگه میگه فایه‌هما افضل بشیء من بدنه الى بدنی صاحبه توضأ اللامس بهما هر کدومی کی از اونا بدنش با بدن صاحبش برخورد کرد لمس وضو میگیره. خب هر دوتا تا لمس میشن. هر دو تا چی میشن؟ در پاورقی هم اینو گفته میگه کل منهما يعتبروا لامسا. هر دو تا فرقی نمیکنه کدوم یکی ابتدا لمس بکنه کدوم یکی سبب شده باشه ولی هر دوتا لامس حساب میشن و بر هر دوتا نیاز هست ولی این قول مرجوه هست قول جمهور فقه یعنی حنفیه مالکیه شافیه و دیگر فقه ها که میگن با لمس وزو باطل نمیشه و قول اونا صحیح تره سنن او ظفرن او شعرن او من ورای صابر رحم محرم فلا يتوضا مگر زمانی که میگه دست بکنه دندانی رو یا ناخونی رو یا موی رو یا از پشت لباس باشه یا محرم باشه در این حالت حوزو نیاز نیست پس چارمین باطل کننده رو شوافه ملامسته النساء میدونن یعنی لمس کردنه زن نامحرم با اون شرایطی که بیان شد که گفتی بقول راجح قوله جبر الفقاص والخابسه مس الفرج بباطن الكف من نفسی او غيره بشهوه او غيرها پنجمین باطل کننده دست زدن شرمگاه با کف دست با باطنش این پشت دستو میگن ظاهر کف اون جایی که باش برنجو برمیداریم داخلشو بهش میگن باطن کف میگه دست زدن فرج با باطن کف چه مال خودش باشه اون فرد چه مال کسی دیگه باشه چه با شهوت باشه چه بدون شهوت باشه اینو هم شافعیه جزء باطل کننده های می میدونن یعنی مسکردن و دست زدن حلقه دوبار حلقه چی؟ دوبار البته مال زکر رو هم فرقی نمی کنه رو باطل میکنه. اما احناف مال زکر احناف میگن که نه زکر دست زدنش بوزور و باطل نمیکنه اینجا پس ستا امه میگن باطل میکنه احناف میگن باطل نمیکنه گروهی گروه اومدن جم کردن چون ما دو تا روایت داریم یه روایت داریم که میگه باطل نمیشه یه روایتی داریم که باطل میشه اینجا مالا علماء اومدن جم کردن و جم قشنگی میگن اگر از روی شهوت باطل میشه اگر از روی شهوت نبود اون موقع مثل دیگه آزاد است مثل در هر صورت این نظریات ما توضیح دادیم مال فقهای بزرگا ورثه و کل ما اوجب الوضوء فعمده و والسهوه سواء هر اون که وضو رو واجب میکنه عمدی بودن و سهوی بودنش با هم برابره حالا فرقی نمیکنه یکی عمدی بخوابه یا سهوی فرقی نمیکنه عمدی چیزی از بیلی خارج میشه یا صحفی فرقی نمی کنید ولا وضوع قيء ولا رعاف ولا حجامت ولا فصل ولا قحقهت مسلح و وضوعی نیاز نیست بر اثر استفراغ کردن و خون بینی و حجامت و رک زدن و قحقه کردن نمازگزار اینا رو چرا آورده؟ چون بعضی از فقه ها رو سبب بطلان وضوعی دولند مثلا احناف قحقه نمازگزار و سبب این اهناف میگه اگر در نماز داره رکو سجدهی شخص خندید قحقه نمازش نمازشتیه تو روایتی که هم میارند روایت ضعیفه، یعنی در واقع در این مسئله قول جنبور فقها ها قوی هست پس اینا این چیزای بودند که وزور را واجب میکنند یعنی شخص قبلا وزور داشته ولی این کارا که پیش دوباره وزور برشتی میشه واجب میشه یا به عبارتی باطل کننده های وزور بودند.